داتا کنون همروه ما هست و برنامه رو سر وقت تنظیم میکنه و به گوش شما عزیزان میرسونه امروز با کسی میخواید مصاحبه کنیم که به نوعی نه با خوندن و نه با اجرا کردن در ارتباطه بلکه بسیار بسیار بسیار موجب این میشه که یک اثر خیلی خوب شدیده بشه و یک اثر تأثیر گذاری خاص خودش رو داشته باشه و قبل از اینکه یک آهنگ به روی مخاطب تأثیر بگذاره کار این شخص هست که به روی مخاطبان تأثیر میگذاره امروز با یک آرتورکیر مصاحبه داریم آرتورک مقوله ای که تای چند سال اخیر بسیار خوب در رپ فارسی بهش اهمیت داده شده و آرتیست ها خیلی این مقوله رو مهم در نظر خودشون جلوه دادن و خیلی براش اهمیت غال شدن و می‌بینید که کارهای خوب و با کیفیتی رو به عنوان کابر آهنگ هایشون استفاده می کنن. امروز مصاحبه داریم با پوریا صادقی عزیز پیستی آرت یکی از ترراهای مشهور رپ فارسی زیاد معطلتون نمیذارم این شما و این پوریا عزیز خب سلام پوریا عزیز امروز مهمون برنامه مایی خودتو برامون معرفی کن و یه بیوگرافی کوتاه از خودت بده تو گفتگور رو شروع کنیم سلام خدمت شما در سهر کارهای برنامهتون و آذانی که الان دارم به برنامه گوش میدم من در خدمت شما هستم چند ساله چه رشته درس میخونی و تخصصت چیه یعنی چیکار میکنی تو رپ و ایران من پوریا صادقی 22 ساله البته تازه 22 سالم شده 11 11 دقیقه بعد توی رشته گرافیک نرفتم درش رشته معماری هستم ولی علاقه خیلی زیادی به گرافیک دارم و طراحی گرافیکم اگه خدا قبول کنه سهرای گرافیک رب فارس و تا حدودی به این کار خیلی علاقه زیادی دارم که باردش شدم اسمان هم هستم اگه سوال دیگه از من در ببین اسمت رو گذاشتی پی اصدی. حالا همه تر میدونم پی دی چیه فایل فتوشاپ رو بهش میگن پی دی اسمت شباهت داره ولی خب من میدونم مخفف چی اسمت خود ادراجه بین این برامون تو در واقع هر که ما رو میبینه میگه که چرا ای پی هستی <تصفيق> چون لوگو دقیقا یه ای پی ایستی مثل ای پی نوشته شده ولی پی <تصفيق> ایستی در واقع چون مثل یه گلوله است که شلیک شده و اون حرارت هایی هست مثل حرارتی کشیده شده گلوله است اون ایه که همه بهش اشاره دارن و پی ایستی در واقع هم یک فایل فتوشاپ معروفه که خیلی سرزبون ها است و از شناخته شده است برای همین یک نشونه گذاری خوبه و هم اینکه پوریا صادقی دقیقا مخففش میشه پیستی اوکی خواست اینو بدونید که پیستی اون فایل فتوشاپ نیست و مخفف اسم پوریا عزیزه پوریا ببین اکی علاقه من شدی که به سمت گرافیک و از کی خواستی که بیای سمت تررایی کاور یا حالا لوگو برای رپ فرس من در واقع قبل از اینکه که اصلا وارد این عرصه بشم عرصه تررایی قبلش خیلی سالهای قبل من یه دوستی داشتم بعد این دوستمون با رپ آشنا شد اون دوره رفت کنم راهنمایی بود خیلی قدیم تر بود بعد با رپ آشنا شد و توی مدرسه آورد سیدی های رپ رو نشون میداده و اینا تازه اون موقع با سیدی های رپ و آهنگ ساز و قاانده های خوب رپ آشنا شد. بعد دیدم چقدر خوبه چقدر صرفی جالبی ایران شده بعد کم کم که پیش رفت همین جوری داشیم آهنگا رو بشیده یکی از دوستامون دوباره رفت و یک آهنگ خوند اصلا خیلی متعجب شدم که چه جالب میشه مثلاً آهنگ خوند به همه صادکی بعد خیلی هم انگ خوبی بود اون زمان که رکورد کرده بود دوستمون بعد همینجوری گذشت گذشت من بیشتر علاقه من شدم به رپ و اینکه قبل از اینکه اصلا بیام وارد عرضه طراحی بشم وارد عرضه موزیک شدم. بعد جوریه که قبلا من موزیک کار می حالا ممکنه خیلیا ندونن خیلی ها خیلی ها ندونن چون خیلی تعداد محدودی شد بدونه که قبلا چیکار می بعد از این قضیه من شاید یکی دو تا ترک همینجوری برای دل خودم خوندم حالا پخش کردم پخش نکردم ولی خیلی منده شدیدی شدم به رپ آه. بعد گذشت گذشت دوباره تا اینکه من یکم به طراحی قبلا هم علاقه داشتم ولی علاقه‌مندم خیلی بیشتر شد خیلی شدیدتر شد و اینکه رفتم دوره سابتمانم کردم دوره فوتوشاب مقدماتی و پیشرفتر رو گذروندم و مدکشو گرفتم یکم کار کردم توی بازار بعد که قضیه بازار زیاد دلم نشست رفتم گفتم برای موزیک کار کنم چرا برای موزیک کار نکنم برای اینکه کاورایی که قبل من دیده بودم از موزیک خیلی خوب بود یعنی اون زمان خیلی کاورای خوبی داشتم نگاه می‌کردم حالا اسم نمیارم از کی از چه کسانی ولی افراد خیلی خوبی داشتن کار می‌کردن که الان نیستن هره. بعد گذشت گفتم که چرا من نتونم بزنم خلاصه رفتم به یه کمپانی پیشنهاد دادم از طریق فیسبوک همون کمپانی همون دو سه تا نمونه کاری که براش فرستادم خیلی خوششون آمد قبول کرد و این شد که وارد همکاری شدیم من یه پوستری براشون زدم که همون پوستر اول من توی سایتشون درد شد. بعد از این قضیه من دوباره خواستم این کار ادامه بدم ولی اینطوری شد که دیگه نتونستم ادامه بدم در واقع کار و مشغله و اینه هستم اجازه نداد که من بخوام ادامه بدم طراحی ها یک سال عقب موندم از ترایی یعنی دقیقا یک سال من از ترایی که علاقه داشتم بهش عقب موندم و بعد دوباره بعد یک سال که کار کمتر شد و دوست داشتم دوباره ادام بدم شروع کردم و دیدم که حالا یه سریا که قبل از ما نبودن دارن بیشتر پیشرفت رفت کن. بعد دوباره خواستم که ترایه شروع کنم و وارد عرصه ترایه شدم این بود تمام داستانی که من وارد عرصه ترایه شدم یه یکی دو سالیه که یکم به قول معروف شناخته شده تر شدی و افراد معروفی کاراشونو میارم میرنداستی تو طراحی بکنی همچنین خیلییا بهت سفارش میدن از این برامون تعریف کن چه اتفاقی افتاد که با چه کاری در واقع معروف شدی و اینو برامون یکم بیشتر توضیح در واقع من افتخار میکنم تو این عرصه هستم و خیلییا به ما لطف دارن خیلی با من لطف دارن خیلییا دوست دارن با من همکاری کنن و اینکه حالا یه سری آرتیست که بیشتر الان دواشون در ارتباطیم و بیشتر باشون کار میکنیم خیلی هم باعث افتخار من است این عرصهی که واردش شدم و دارم کار میکنم داخلش یه سری دوستان هستن خب میان پیشنهاد میدن که مثلا کاور ما رو تررایی کن یا اینکه حالا یه سری آرتیست هست یه سری هم هستن که من خودم میرم بهشون پیشنهاد میدم اونا افرادی هستن که من خودم مورد علاقه من هست و کاوری که من باش بخوام بگم خیلی شناخته شدم نمیدونم کدومو اسم ببرم ولی از اولین کاورم دقیقا مطرح شدم کاوری که برای کمپانی 13 و آلبوم آمپول زدم آلبوم یعنی این یکی دو سال پیش آره دو سالش من دو سال کلند تر دور جدی قبلش که نبودم بهترین کسی که باهاش کار کردی و دوست داری باهاش کار بکنی کیه بین همه اینایی که تا الان باشون همکاری کردی ام... نمیتونم اسم ببرم چون همه کسایی که من باشون کار کردم 100 درصد علاقه داشتم باشون کار کنم و خب هر کدوم آرتیس های مطرح خودشون هستن خیلی کارای خوبی دارن و صدرصت تونستن تو عرصه موزیک و رپ جا باز کنن برای خودشون و کار خوب بدم بیرون که مردم قبولشون داشته باشن من کسایی آره. باشون کار کنم که خودم علاقه شخصی داشتم بهشون ولی میتونم اسم ببرم به جرعت کسی که خیلی دوست دارم باش کار کنم کسی نیست جز از اول زندگی ماشقش بودم <تصفح> آره. اینشالله که بتونی باش کار بکن. میخوایم میخوام کم بس تخصصی ترش کنم باز دوباره وارد این مبایس همکاریات میشیم الان کسی که بخواد ترراح بشه چون الان دست دو کار شما خیلی زیاده دیگه ولی خب کسی که بخواد ترراح بشه باید چی کار بکنه چه مرایلو باید بگذرین تایی ترراح خوب بشه ببینین هر چیزی نیاز به دانش داره اول بعد تجربه حالا یه سری هستن که این وسط میان میان بر میزنن میخوان تجربهشون تجربی کار کنن در واقع میگن دانشش زیاد مهم نیست حالا به مور زمان میشه دانششو به دست بود ولی نمیتونن از این قافل بشن که دانش یک, یک کار یه هرفه خیلی مهمه اگه شما از ریشه قوی نیا این بالا از ریشه درست کار نکنید خب اون خشت اولی که میزنید کج باشه دیگه تا سرعی کج کش دیگه دقیقا همون مثالی که میزنن باید بتونین از همون اول پایهی و اصولی کار کنید من بهشون پیشنهاد بکنم به جای که مثلا بیان یه سری برنامه ها رو دانلود کنن یه سری پکا رو بخرن با پک و سیدی بر جلو خوبه من نمیگم بده خوب یا مثلا از سایت ها دانلود کنن آموزش ببینن من نمیگم بده ولی میگم طوری کار کنن خوب که اصولی باشه من خودم با دوره رفتم پیش رفتم جلو و افتخارم می خیلی هم میگن که ما مثلا تجربی کار میکنیم مثلا دوره اینا نرفتیم خیلی بهتره خیلی مثلا شاخ به قول معروف نه اگه اصولی کار نکنید به جای خوبی نمیرسیم من بهشون پیشنهاد می که اولن که دوره برن یا سی های پک های آموزشی خیلی معتبر بگیرن و بارها و بارها تمرین تا اینکه هر بار که میبینن دیگه بدونن فولن کامل دیگه اون برنامه رو فولن بعد اینکه بیان خلاقیت داشوشن بیان ایده پردازی کنن بیان چیزهای جدید به مردم برسونن خیلی از کاورهای که الان هست زیاد شاید کاور خیلی خوبه ولی مثلا مفهوم اون موزیکا نمیرسونه شاید هم کاور خیلی بده ولی مفهوم موزیکا میرسونه اگه این دوتا با هم ترکیب بشه و کاور هم خیلی خوب باشه خیلی خیلی چیز جدیدی باشه خلاقیت داشته باشه ایده پردازی داشته باشه و هم اینکه مفهوم موزیک رو به خوبی به شنونده القا کنه خیلی پاورای موفقطری تو به فارس داشته داشت آره پس ببین تو اول میگی که کسی میخواد ترار رو شروع بکنه بره سمت تئوری، دانش گرافیک رو یاد بگیره بعد بیاد سمت آموزش کار کردن با نرم اینا. بله اوکی پوریای عزیز فکر می‌کنم که کارهای بین مدلی هم انجام دادی و تا, تا حالا فکر میکنم یک مدرکی هم از کشور کانادا داری اگه اشتباه نکنم راجعه بینم اگه میشه برامون توضیح بله، بده بله در مورد باید بگم که یه سری کار بین مدلی داشتم دوتاش اومد بیرون دوتا دیگهش مونده از چهار تایی که اعلام کردم و از اون طرف یه سری کارهای دیگه هم هست که ان بیاد بیرون چند وقت دیگه کاراشو کردیم تا حدودی یه سری دیگه کار هم هست که میخوام پول ارتباطی بزنم یعنی داریم پول ارتباطی میزنیم با اون طرف که کارهای شخصیشون یا فیتاای که با حتی خود اون طرف میدن داشته باشم که یه سری حرکت مثبت و خوب باشه برای طراحی در ایران برای اون مدرک باید بگم که من توی مسابقات گرافیک شرکت کردم البته یه سری قوانین خاص خودش رو داره که تونستم ازش بگذرم و مدرک گرافیک از کانادا رو تونستم کسب کنم که خیلی خوشحالم که این افتخار نصبم شد ببین الان تو رپ فورس ما چند مدل کاور داریم یعنی مثلا کاور انتزاعی انتظایی داریم مثل کاورهای مثلا نگار علی سورنا یا اشتباه خوب بهرام کارهایی که همکاراتون میزنن واسه اون تشکل یه سری کارها هم داریم که یکم کلاسیکتر و امروزیتره به قول معروف، مدردتره مثل کارهای خودت، کارهای رقیبات، آرتیست های بروزتر اینا رو میشه راجع به این تفاوت ها برامون توضیح بدی. راجع به این دستبندی ها و هرکسی میتونه تو هر دو دو دو دو دو دو بندی کار بکنه یا نه؟ واسه مثلا دانش خاص خودشو میخواد. بله، من در مورد این مسئله توضیح بدم اتفاق خیلی سوال خوبی کردی. این قضیه خیلی جالبه به خاطر اینکه هر کس هر شخصی هر طراح موفقی سبک خودش رو داره و اینکه ما بخوایم سبک ها رو با هم یکی بکنیم همه یه مدل کار بکنن سیاه چیز جالبی در نمیاد من به تمام رفیقا و همکارای عزیزم که دارن توی عرصه کار میکنن واقعا خسته نباشی میگم و باعث افتخارم است که در کنار در کنارشون دارم کار میکنم چون که ترایه خیلی خوبی دارم توی رب فارس هم اینجوری که قبلا داشتیم و الان نیستن ام. و این خب برمیگرد به بحث این که زایی زیادی توی رپ فارس وجود نداره برای ترایه عزیز همینجوری که دارم خیلی زحمت زیادی میکشن و اینکه ارزش ترایه رو یکم نادیده میگیرن بعضی دوستان کم لطفی میکنن و در مقابل همین ترایه به موزیک برمیگردن، به خواننده برمیگردن. همون جوری که مثلا طرح چه شخصی بس ببرم علی سورنا که مثلا نگار رو دادن بیرون و طرحشون متفاوت با طرح های, طرح های دیگه بود خب اون کاور برمیگرده به آلبوم به اون مجموعه به شخصی که داره میخونه چه چیزی داره عنوان میکنه چه جوری داره میخونه و اینکه حالا یه سری کاور مدرن داریم یه سری کاور دیگه داریم که مثلا تو سبکای دیگه هستن ولی هر طرای هر طرحی بتونه به دل مردم بشینه به دل به دل بیننده و شنونده بشینه به کار کرده یعنی وظیفه و رسالت خودش رو رسونده به ببین الان میخوام یه وارد کار خودت بشم یعنی راجع رو به رول میخوام سوال بکنم الان مثلا من آر... من آرتیست یا من مثلا مدیر کمپانی میام بهت پیشنهاد میدم یه کاور برای من تجربه کن خب با... اولین چیزی که تو میخوای چیه مثلا اول دوست داری کارو گوش بدی یا نه یا اگه مثلا کار خیلی سیکرت تر باشه دوست داری ایده کارو بدونی که بعد بشینی شروع کنی به طرح زدن خب من شخصا هم که اول با آرتیست که صحبت میکنم میگم که من زمان کاری که میخوام به شما بدم یک هفته است. آره یا مثلا سه روزه یا چهار روزه بر اساس برنامهی که دارم و بر اساس سفارش هایی که دارم اون زمان برنامزی میکنم که چه زمانی میتونم به شما این کابه رو برسونم و حالا اگه عجله داشته باشه با هم توافق میکنیم که مثلا حالا یه روز دو روز کمتر تر بعد از این قضیه وارد این بحث میشیم که ماکت یا موزیک رو بفرستم برای من که من گوش بدم و بتونم ازش ایده پردازی کنم و بتونم ایده و مفهومی که موزیک داره رو به گوشه مردم و دید مردم برسونم و نکته بعدی اینه که باید مشخصات کار رو بگیرم از دوستان و بعدش هم لوگوها دیگه بعدش همه برنامه و بقیه چیزها به عهده من که چه تحریل توی زنم ایجاد کنم البته من اول روی برگه میکشم یه ایده تو سرم میارم روی برگه میکشم بهش پروباهال میدم بعد میارم تو گرافیک دوباره تو فوتوشاپ یا مثلا ها برنامه دیگه اونجا دوباره بهش پروبال میدم و کاراشو میکنم, میکنم. آره ببین تا با حال شده به مشکل بخوری مثلا آرتیست خیلی معروف حاله یا مثلا یکم پایین تر بیاد بهت بگی که نه آقا مثلا من دوست نرم کارمو بر ارسال بکنم یا برای اینا چیکار میکنی؟ یعنی مثلا سناریوی کارشون رو می‌گیری تحلیل میزنی یا نه چه اتفاق میفته؟ خب بله یه سری‌ها هستن که 100 درصد رو کارشون خیلی اساسا البته ارتوس‌ها خیلی مطرحطری هستن ام. و این افراد کسایی هستن که شاید نخوان کارشون رو بفرسن یا مثلا مشکل داشته باشه که کارشون رو بفرسن ماکت باشه یا مثلا کامل نباشه در هر حال یه سری ترسا وجود داره و اینکه این افراد وقتی که دیگه مثلا ماکت و موزیک رو نمیفرسن مجبوریم باهاشون صحبت کنیم که آقا کار چه سبکیه دانی شما خودتون موزیک رو و ایدهی که موزیک داره چیه داریش یه بش نونده میرسونه چه حرفی داخلشه وقتی اینا رو میاد به ما میگن جواب میدن خب میشین برنامه‌ریزی میکنیم که چه حرکتی روش بزنم چه ایدهی روش بزنم که خوب در بیاد و اونجوری کار رو پیش میبرم آره ببینید کم بیاییم داخل بحث اون قسمت تررایی کردن یک کار قسمتی که وارد کامپیوتر میشی و میخوایی دیگه اون کار تولید بکنی بب. با کدوم افزار کار میکنی چجوری وارد میشی و من خیلی ها ازت سوال میکنن از چه فونتا استفاده میکنی ای ای این رو برای اون بب... در واقع من میگم حدود دو ساله وارد این عرضه شدم و خیلی چیزا یاد گرفتم از خیلی کسا و خیلی چیزا هم خودم به دستورددم خیلی تجربهم خودم به دستوردم من یه سری برنامههایی که باشون کار میکنم کنمم دوستان پرسیده بودن یهس جواب داده بودم ولی خب الان کاملتر شده قضیه اینه که من با یه سری برنامه ها کار میکنم اولی فتوشاپ که خیلی از دوستان کار میکنم و بعدی اسریوره <تصفيق> گزینه بعدیش سینما فوردی و تریدیه گزینه بعدی هم که جدیدم به دست بردم قلم نوری و نقاشی دیجیتال است. فونت هم والمال از همین اینترنت دانلود میکنیم خیلی ها فکر میکنن که مثلا تو وقتی داری برای افراد بزرگ کار میکنی یا مثلا آرتیست های معروف از جون هزینه دریافت نمیکنی یعنی اینا برایم توضیح بده روال درآمد چجوریه برای هر کار چقدر هزینه میگیری و چقدر حساسی رو کارت برای این قضیه والله من با عشق وارد این عرصه شدم و به چشم حالا مثلا درامت زایی و کسب به درآمد بهش نگاه نکردم یه سری چیزا هست که خیلی علاقه شدیده عشق در واقع و یه سری چیزا هم هست که تو به چشم پول می‌بینی حالا میتونه علاقه باشه هم در کنارش برای حرفا هستید پوله من این اه, کاری که دارم انجام میدم هدف اصلیم اه, پول نیست و اینکه دارم یه کاری میکنم که هم خودم ازش لذت ببرم و هم بتونم به کمک خیلی کوچیکی به رپ فارس بکنم و اگه حالا مثلا یه سری آرتیست هستن که ام, تراها یا من آخه فقط بحث من نیست تراهای مطرح نمیان هزینه, هزینه بکنن یا هزینه آنچنانی بکنن برای کاری و اینطوریه که یه سری کاور یه سری آرتیسا با عش علاقه بیشتر پیش میره من مثلا به یه آرتییس علاقه دارم مثلا رفیغمه مثلا یه کاری براش انجام میدم حالا یه آرتی هممثل بهش علاقه دارم چون بهش علاقه دارم یه کاری براش انجام میدم پس دیده در آمدزاییش ندا و در کنار اون یه سری حالا مثلا وریوس آرتییس هستا یا یه سری افراد دیگه هستن که میام پیشنهاد میدن اونا هزینه میگن اونا یه سری هزینه جدا داره که حالا توافقی یا این که هزینه ثابت و در کنارش مشتری ها هستن دوستان من هستن که برای اونها هم که کار میکنم هزینه ثابت داره و حالا جهیدن هم که تخفیف زدم به خاطر این زدم که یه سری از دوستان هستن واقعا وستمالیشون به اون درصدی نمیرسه که با منم کاری کنه و خیلی دوست دارم مثلا با من یا با هر شخص دیگه ای کار کنم خب من نمیتونم دست خالی و افراد برگردونم چون وجدان خودم اجازه بهم نمیده و اینه که این درصد تخفیفو زدم با اینکه زیاد نیازی به این زیاد نیاز خاصی به این پول ندارم ولی واقعا خواستم که یک کمک بکنم به کسانی که دوست دارم و من کار کنم ولی نمیتونم بسه مالش رو آره نگفتی رقم کار زدن چقدره این نرخت رو بگو شد یعنی یکی باشه که داره گوش میده دوست داره باید همکاری بکنه و بگو چی جوری باید ارتباط برقرار بکنه و سفارش میده <تصفيق> بله این قضیه هم اینطوریه که من اینستاگرام هم هست اونجا دوستان میتونن تو بیو تلگرام هم هست از همونجا میتونن وارد تلگرامم بشن یا دایرکت بدن همونجا بهشون خزینه رو اعلام می‌کنم و حالا خزینه بحثش بعضی وقتا بر اساس افراده من ممکنه مثلا یه سری افراد باشن خیلی صحبت کنم و خیلی کارشون خوب باشه خب باشون کمتر رامیام به خاطر اینکه اون شخص کارش که خوبه با شخص دیگه که ممکنه کارش لولش چند صد پوینت‌تر از اون شخص باشه باید فرقای داشته باشه من زیاد قضیه رو در آمدزایی نمی بینم تو این اره میگم برای کسایی که کار میکنم دوست دارم که کارشون خوب پخش بشه کارشون خوب بیاد بیرون دل سوزانه در واقع کار میکنم برش و حالا هزینه ای که قبلا بوده من 100 هزار تومن بود کابه و لوگو ها همینطور حالا یه سری کاورای دیگه دیجیتال آرت یا مثلا تیریدی به همین روال بالاتر میرفت یا مثلا تیزر ویدیو ولی برای اعلان که مثلا تخفیف زدن اینا نصف شده قیمت ها فقط هم به خاطر اینکه اون افرادی که نمیتونن واسه مالشون بتونن و با هم هم کالیش آره ولی خب پس این هزینه متغیره یعنی بالا پایین میره و. عوض... بلی موقع عوض... کمی بلی آره. مواقع کمی چون بسته به خواسته مشتری تو دیگه بله. آره الان مثلا میتونی یه کد تخفیف فیدی برای این کسایی که دارن برنامه رو گوش میدن و میخوام بیان پیشت تو کاور استفادش بدم والا چی بگم من نمیخوام قضیه رو تبلیغاتی کنم ولی نه من دوست دارم چون ببین کارت اینه و من دوست دارم که وقتی دارم با حد مصابه میکنم دوست دارم قضیه رو تبلیغاتی بکنم چون ما لطف داریمه من, من واقعا ولی باشه اونایی که واقعا دوست دارم, و علاقه دارم من اون حزینه که قبلا داشتم کاورا و لوگو صد بوده الان تخفیف پنجا درصد خورده و خیلی جام اعلام شد از پیجه زیرزمین نیوانی موشه عزیز فاز و دوستان دیگه آمده دستش توی کانالاشون گذاشتن حتی به ما لطف داشتن و خیلی جا اعلام شده ولی من بازم اعلام میکنم که هر قیمتی که قبلا بوده الان نز شده و رسیده به 5 آره بس میاد میگن که از طرف برنامه گفتگو و گیه اومدیم و بهشون تخفیف میدیم ببین پوریا یه سری ابهام بود تو کارایی که برای پوریا پوتک میزنیم <تصفح> کارای رمزدار و این چیزی که شنوانده خودشون در میارن میگن اینجاش دست نداره فلانه و اینجاش چشمش اینجوره ایلومیناتی اینا اینا برای خاطر خواسته خود پوریا یا نه اینا ایدای خودته <تصفح> در مورد این مسئله خیلی جالبه ما رو دیگه فراماسونی فرض کردن و کامل و اینکه اصلاً ما چشم جهان‌بی شدیم مثلا <خیفرق> خیلی جالب شده هر کی منو می‌بینه شما فراماسونی هستین <DialSE> نه آقا چه فاجعه من اصلاً تو این ها نیستم و اینکه اگه کاوری اگه حالا هر چیز دیگه ای که من طراحی کردم با یه سری نمادها بوده و اینا من اومدم اعلام کردم عطا کاوری که من برای آمپول زدم دوباره اسم می‌برم به خاطر اینکه دوباره بحثش پیش اومد و جای مناسبیه که اسم ببرم کاوری که من برای آمپول زدم اومدن همه گفتن که توی اون محلول آمپول یک شیطان وجود داره یک بوز شیطان نما وجود داره و اینکه خیلی اینگو به ما زدم با اینکه این کاور قرار بود اصلی باشه تا چاپ هم شده بود کابر دومی که من زده بودم کلا برای پارس قرار بود بیاد بیرون و کاور اصلی بشه حتی چاپ هم شده بود خیلی از دوستان افروتن تهران دیده بودم من اومده اعتراف دادم و ولی به خاطر همین حرف کوچیک و این حاشیه هایی که برام انجام دادم ما مشکل خوردیم سر این کاور و جالب نبود دیگه در کل بعد من اومدم دوباره یه پستی گذاشتم خودم که اومدم نشون دادم که این فکری که شما داشتین حرفی که شما زدین در واقع شیطان نبوده اومدم دقیقا بزرگ نمایش کردمم و عکس نشون دادم که یه فرشته بود که سرش نورانی بود. حالا توی کاور مردم با چه دیدی نگاه میکنن چه فکر پلیدی از خودشون بیرون میدن اون ساخته ذهن اون شخصه ساخته ذهن اون مردمه و خیلی ها هم دیدهای دید های به این مسئله داشتن و حتی اومده با من. مشورت کردن گفتم بهشون که این قضیه اصلا نبوده ولی یه سری دیگه خیلی دیده بعدی به این قضیه پیدا کرد و کاورای پوریا پودا هم یه س... مخصوصا خودکشی خودکشی یه سری داستان داره که حتی یه سری اومدن به من گفتن که ما با شما مصاحبه می‌کنیم فقط بیاین رمزشو لو بدین که چه حزینه‌های بالایی اومدن به ما گفتن که شما فقط رمزشو لو بدید ما میایم این حزینه‌ها رو به شما بدیم. ما با اصلا رمز وجود نداره هر چیزی که شما تو این کاور می بینید دیگه می‌تونید می برداشت شخصی بکنید من یه کاور میزنم برداشت شخصی خودم از اون کاور چیه و برداشت شخصی مردم از اون کاور چی میشه حالا اون چیزی که جدا تو زن من یا پوریا بوده اگر عزیز هست چیزی که میونه قرار نیست بیرون درج درج بشه بس یعنی اینا ایده بوده که پوریا بهت گفته بعد تو انجام دادی تا حدود کمی بیشتر کاورات سمت ایت بردازی خودم و با مشفرت با آرتست. ببین یه اتفاق دردناک و بدی میفته برای بعضی از ترراهای عزیزمون اینه که کاری رو که انجام میدن بعدا وقتی مثلا میرن توی یک رسانه بزرگی میبینن و دوست دارن که توی اون رسانه اسمشون بیاد و برشون تبلیغات بشه میبینن که اون رسانه اون لوگویی که داشتن رو کات کرده این اتفاق ببین کنم برای تو هم افتاده. این چه حسیه و چه درخواستی داری از این کسایی که این کار رو انجام میدن؟ این قضیه خیلی جدیدن رواش پیدا کرده جوری که به رسانه بزرگ ملی ملی که نمیشه گفت خیلی به رسانه رسیده که خیلی بزرگه تو دیده مردم و خیلی آهنکات رادیو جوان رو می میخوایی اسم نگاری؟ راحت باش شما را میزنیم تو خواهرم ولی در کل حرکت جالبی نیست چون همونطوری که یک خاننده میاد زحمت میکشه حالا شعر تحیم میکنه میخونه و زحمت میکشه همونطور که یا آهنگ میاد یه آهنگی رو میسازه و کلی وقت میذاره پاش انرژی میذاره پاش همون انرژی که میتونه جای دیگه بذاره و درامتزایی بیشتری شاید بکنه یه تنظیم کننده یه هم همینطور یه کاورزن هم همینطور ی زحمت میکشه حتی یه سری تر هستن که من دیدم جوری ایده پردازی میکنن خب که شاید یه آهنگساز اون ق... آهنگساز اون آهنگ نتونه بکنه حتی تر ممکنه قوی تر از یک آهنگساز بعضی وقتا پریدار بشه همتونه هم ممکنه برعکسش پیش بیاد یعنی دقیقا هر کدوم اهمیت خاص خودشون دارن. قرار نیستش که یک تر نادیده گرفته بشه حتی اولین چیزی که شما تو یک سایت میبینین یک رسانه میبینین از یک آهنگ تره اونه که ممکنه شما رو جذب اون موزیک بکنه حالا برای افراد مطرح جدا ولی برای سری افرادی هم که اسم خاصی ندارن تره که رو و بشنوندر رو جذب اون میکنه. به قول اینجا دوباره اسم برم نیمان نیموش عزیز میگه که کاور یه ورس دیگه ای از آهنگه که خیلی مهمه توی موزیک و درست حرفش واقعا اترام میذارم. همینطور خیلی حرکت جالبی نیست واقعا که اسم سری طرایی که در زحمت میکشن برد داشته بشه یا اینکه دیده نشه واقعا جا آره خب ببین 100 درصد تاثیر گذاری یک کاور یک اثر هنری که با یک آهنگ میاد بیرون اگه برابر نباشه حداقلش نصف، اون ما اثر بخشی روی کاوره و این یک ظلم بزرگه با این همکارات آرت های معروف تر ارتباط داری رفیقی اصلا چه جوری رابطه تون با اونا یه سری افراد هستن خیلی به ما لطف دارن و منم خیلی تا جایی که تونستم خیلی باهاشون خوب رفتار کردم چون واقعا اونا هم خوب با من رفتار کرد یه سری افراد هم هستن که دیده خوبی ندارن و کلن دوست دارن آدم رو تخریب کنن این سری افراد میتونی اسم بیاری؟, بیاری نه اسم نمیارم چون واقعا ارزش ندارن که بخوام اسم بیارم و اون افرادی که البته اون افرادی که میخوان تخریب کنن فقط اون افراد اول کار ما زیاد بودن و من باشون رفیق بودم حتی خیلی خوب باشون رفتار کردم یه سری کمکشون کردم تا جایی که تونستم بهشون کمک کردم ولی خب دیدن یکم لیولم رفت بالاتر خواستن بکشونن پایین که خودشون برن بالا و این حرکت جالبه نبود و دوستی ما دیگه قد شد از اونجا ولی یه سری افراد هم هستن که تو ترایی رفت فارس دارن زحمت میکشن همینجور دیده بعدی به کسی ندارن دوستان همه پیشرفت کنن و کمک میکنن تا جایی که بتونن من با این افراد خیلی رابطه خوبی دارم و خیلی هم باعث افتخار من است اسم چند تا از تراحی مطرح رپ فورس رو میارم و نظر تو بهشون بگو اگه سختت نیست باشد چشم اول اولی که هست هرفهی ترین تراحی رپ سالای کریمی که خیلی وقت داره این کار رو انجام میدید. سالای کریمی عزیز شخصی است که خیلی قبل من با کاورای اون آشنا شدم و به رپ فارسی و کاورای رپ فارسی وارد شدم و در واقع خیلی کارش دوست داشتم اون قبلا و الان هم کارش رو نفر بعدی میلاد میریه میلاد میریه عزیزم رفیق بنده است و خیلی دوستش دارم شخصیت بسیار مهربون و شخصیت خیلی خوبیه اصلا دیده بعدی به کسی نداره و تا جایی که میتونه به هر شخصی کمک میکنه من از میلادم میری خیلی چیزا یاد گرفتم و در واقع خیلی با هم رابطه خوبی بعد خیلی یا سر کاور های پوتک فکر میکنه که تو با علی نوری تر رای کمپانی استپ به مشکل میخواد یا باش رقابت داری علی نوری بگو. متاسفانه نمیشناسم زیاد شناخت خاصی از ایشون ندارم و اینکه هر کاری میکنن هر جایی هستم موفق باشم. آره نفر بعدی جمال دهخان پوره بچه اسوانه اتفاق خیلی دوستش دارم حالا وقت نشده ببینمشون فرصت نشده ولی اینکه با هم توی فضای مجازی کانکت هستیم و کاورایی که برای موزیکای پاپ میزنه رو خیلی میپسندم. و بهش تبریک میگم باعث موفقیتش. آره بعد میگم سراغ اون تره های سبکه های انتظایی مثل سواد کارشون رو میپسندم چون واقع ایده خیلی خاصی دارن و توی حرفه و سبکی که دارن کار میکنن خیلی خوب پریدار شدن دمشون گرم هیراد طراح تشکل ملتفت تیریدی کار میکنه تا حدودی ولی تیریدیش نمیدونم بعد چند سال چرا هنوز توی مرحله ثابت مونده ولی در کل کاراشو خوبه شد. آره باشد حرفی مونده که من از قلم بندازم یا چیزی که خودت دوست داری بگی ما در خدمتتیم من فقط میگم تره ها رسالت دارن که خوبیا و بدی رو به مردم نشون بدن و قرار نیست خوبیا با بدیا دیده بشه و بدیا با خوبیا تر... یه سری افراد هستن که دوست دارن فقط آدمو ببرن تو آشیه تخریب کنن حالا یه سری حرکات بزنن که جالب نیست مثلا خودشون برن بالاتر یه سری سریو بگی شامپانی رفتن بالا اصلا دست کسی رو نگیرن بیایم با هم با هم خوب باشیم بیایم عشق ورزیم به جامعه و به هر شخصی که دوروبرمون است بیایم خوبی کنیم تا خوبی ببینیم و اینکه ایشالله هر کسی که وارد این عرصه میشه یا هر عزیزی که دوست داره وارد تررایی بشه موفق باشه و اصولی پیش بره که ایشالله جامعه کلن پیشرفت کنه توی عرصه آره. ببین روال برنامه ما که قبلن رجاش با صحبت کردم اینه که از همه مهمون همونی چیز رو به عنوان یادگاری میگیریم اگه خودشون تمایل داشته باشن یادگاری تو برای برنامه ما چیه؟ بالله باعث افتخار چشمت من. شما هر جور که میدونین سلاه بگیم من همون کارو میکنم حالا کاوری است چه میدونم تیزری است. من در خدمتتون هستم ولی بیشتر رو کاور <تصفح> تمرکز کنید چون تیزری کم زمان برای نه میکنم. خیلی منشکره که قبول کردیم مهمون برنامه ما باشی یکم این گفتگو رو با عجله گرفتیم و تو خودتو وقف دادی با شرایط برنامه ما و من ازت تشکر میکنم که تونستی با ما را بیایی خواهش میکنم باعث افتخار من که داخل این برنامه بودم با شما صحبت کردم سجاد عزیز و تونستم شنوانده عزیز را اگه تونسته باشم راضی کرده باشم و یه سری سوالا چاله شما پرسیدین سوالای بعضی دوستانم بوده جواب داده باشم در کل مرسی خیلی لطف کردین و ان که این برنامه بتونه حرفای خیلی خوبی که یه سری آرتیستا نمیتونن به گوش مردم و برسونه و هر روز پیشرفت روزافزونی داشته باشه منم از طرف خودم و تیم گفتگوی هیپ‌هاپی براتون آرزوی موفقیت میکنم و خیلی خوش اومدی به برنامه شما خیلی خوشحال شدم خب خیلی ممنون از شما عزیزان که وقتتون رو گذاشتید و این برنامه رو گوش دادید امیدوارم که مثل قسمت های قبل خوشتون اومده باشه و اون نکاتی که میخواستی از این برنامه کسب بکنید کسب کرده باشید همونطور که میدونید داریم به پایان گفتگوی هیپاپی نزدیک میشیم پس خواهشن زودتر نظرات پیشنهادات و انتقادات خودتون رو در صفحه برنامه به نشانی هیپاپ اینستاگرام برای ما کامنت بگذارید یا دایرکت ارسال کنید تا ما بتونیم برنامه شما رو بهتر از قبل بکنیم تا برنامه بعدی خدا یار و نگهدار شما